بسم الله الرحمن الرحیم بسلسله های احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم امروز بحثی داریم در مورد غیبت سخن و و کردن اشخاص و ارشادات نبی کریم صلی الله علیه وسلم در این مورد و شلون چکه شما جریان هستین استاد محترم تشریف دارن از استاد در این مورد سوالات خود داشتیم و از شما دوستا خواهش میگنیم که تا آخر بحث ما را یاری کنیم استاد محترم با برنامه خوش آمند شما تشکر زنده باشا. اولین سوال من از شما این گودم مطرح میشن که بعضی ها سخن میگوین و با آن متوجه نمی باشن از دیدگاه احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم این مردوم چگونه است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی ما درباره این موضوعات صحبت میکنیم بهتر است که مستقیما حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ای قسمت ورودی مطالعه قرار بدهیم بله از ثقه ابو حریره که رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت که ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقى لها حبالا الا الله بها درجات یک <متصف> نفر یک سخن میگه کلهو سخن رضایت خداوند متعال کله جولونهفته است و و سخن خود او قدر متوجه هم نیست یعنی زیاد سرزو حساب نمیکنه لیکن بای نمی سخن درجات زیر خداواند مطال جل جاله حالهو بالا بی بلا بل. و این العبد لا يتكلم بالکلمة من سخت الله یک شخصی سخن رمی که او غزب و قحر خداواند مطال جل جاله حالهو است لا یلقالها بالا با اون قدر متوجه نمی باشه یعنی برای بسیار آدی میکرد پیش خود یه و بها ها جهنم میگه اینمی شخص بواستی اینمی سخانه خود داخل جهنم میشه یعنی مستحق عذاب دوزخ میشه از این خاطر این حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر ما میگه که شما کوشش بکنید که در الفاظتان عادت بکنید که حتی الفاظی که متوجه نیستین و برتان بسیار عادی هست و شما در قسمت زوری تفاوت هستین دو جه هم رو من استعمال بکنین که دو رضایت خداوند متعال جل جلوه باشه خب سوال دومم به شکل دیگه مطمئن که در قسمت لعنت لعنتگویان شریعت اسلامی دیمارو چه حکم میکنه؟ چی نظر دارم؟ بله لعنت یکی از الفاظ بسیار بد است که مسلمان نباید دوره به زبان خود بیاره. حضرت ابوهریره رضي الله تالوا روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مقال یعنی پیغمبر صلی علیه و سلم گفت در ما یک بابی در مشکات المصابیح داریم که حفظ اللسان و الخيبه و شتم در این باب در صفحه 413 میخونیم که حضرت ابوهریره رضي الله تالوا میگه که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم گفت که لا ينبغي لصديقان آن یکون لعانا بریک انسان راست گو. یعنی من زرش اساتقی مسلمان است یعنی برای یک مسلمان جایز است که لعنت گو باشه. ایرا اعزادتی مسلم کتاب مسلم ارواحش لیهات شریف و در صفحه چهارصدی از دیه مشقات هم ذکر شده. اصلا لعنت چی میگن لعنت این علماء میگن که اللعنو اطاردو من رحمت الله باید. لعنت چی است؟ درد کردن یک کس از رحمت خداوند وقتی که یک کس کسره میگه لعنت بسر تو بقینا یزی که تو از رحمت خداوند دور شوی یعنی بی ایمان از دنیا بری تا رحمت خداوند نصیب تو نشه و ازی خاطر میگن راضی شدن با کفر کفر است شما باید یک حتی بعضی علما میگن که حتی کافری که زنده باشه شما رو لعنت نگوین برش بوون که خداوند رو هدایت بکنه الان شما فکر بکنید وقتی که برای یک کافر اقسم میگن برای مسلمان خو اصلا هیچ جایز نیست که انسان کلمه لعنت در مقابل زون استعمال بکنه و حدیث دیگه اینجا داریم که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که حضرت ابودارد رضي الله تالاه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که اینن لعانین لا یکونون و ولا شفاء یوم القیامة کسانی که لعنت هستند یا نه من حیث شاهد بالای مردم در روز قیامت پذیرفته میشه و نه هم شفاعت کسی را کرده میتونن یعنی خود انسان با اینمی که یک کسی دیگری لعنت میکنه نمیتونه که شفاعتی کسر در روز قیامت بکنه و نه هم شهادتش درست میشه از این خاطر لعنت گفتن یک گفه بسیار بدیست که یک مسلمان باید از این اجتناب بکنه ام، ام، سخنچین یا شیطان با کدام اشخاص اطلاق میشه و حکمش از نگاه شریعت اسلامی چیست این مورد اگر خب امی که یک نفر سخن یک با کس، با کسی دکی میبره <تصفيق> مثلا اما نه برای شما کسی میشینه و برات میگه که فلانی نفر در مورد شما این تو گفت. اون نفر مشخصه میخوای بر شما معرفی بکنه خب اگر هدف از این نفری باشه درسته که اون شخص میگه فنه زده یا زده اون نفر خب بنا. گفته باشه یا نگفته باشه میشه که میگه گفته باشه, میگفه گفته باشه. انتقالی نمیگه به بدی یک نفر برای کس دیگه به خاطر که در بینی این دو نفر ایجاد بدی و رسالت بکنه خودش یا کار بسیار بد است در متون دری گفته که اما سخمچین چینی بدبخت هیزمکش است مثل هیزمکش و برابر و در حدیث شریف ما شما چی میخوانید حضرت رسول الله صلی الله علیه و میگه که تجدون شر الناس يوم القيامه ذو الوجهين الذي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه میگه بدترین مردم در روز قیامت کی است کسان است که دروی و دو پشت است بای با مردم با یک چیره به او مردم دیگه با چیره دیگه وقتی که امرای شما شش براتون میگم من شما را بسیار دوست دارم شما بسیار دوست من هستید با امرای شما محبت دارم ولی وقتی که با امرای کسی دیگه که با شما مخالف است امرایش شش باز بر که من امرای شما دوستی دارم با اون بد میبینم و او بد است او خراب است و به این شکل از این خاطر در حدیث شریف دیگه حضرت حذیفره دهتلون میگه میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و salam بر پیغمبر صلواتم شریدم که میگفت لا یدخل الجنه قطات انسان سخنچین داخل جنت نمیشه و این حدیث شریف است که متفق علیه یعنی امام بخاری و مسلم هم روایت کردن و در صفحه 413 مشکلات المسابيح ذکر شدن خب انسان سخنچین چی میخواست میکنه به خاطر که در دو مسلمان دو انسان ایجاد بدی و دشمنی میکن، از این خاطر خودش از شر خداوند مطالب شلچل هم حرام میشه. بله. خوب نکته اشاره کردن اینجا گفتین که به خاطر ایجاد دشمنی بین شخص سخنچین سخنها رو انوان میکنن سوال دیگه، من میخوام به این شکل انوان کنم که کسی که به خاطر اسلام مسلمان دروغ میگویه این اورチナ جا درنش اب برابرکس سخن شین است ببینن برابرکس سخن شین برابرکس سخن چون اهداف ها فرق میکنه بنان هدفشی بود که در بین دو نفر ایجاد بدی بکنه یعنی ایجاد کنن و این دو نفر با هم پرته از این خاطر بر ازوت یک عذاب در روز آخرت تعیین شده که او داخل جنت نمیشه الله ادخل جنت متقطتات متقطتات یعنی سخن شین بنان ولی اصلا خود دروغ یک چیز بد است بله. که پس آن در مورد از اون با ذکر کردیم لكن بله. دروغی که مصلحت آمیز است این در دروغ حساب نمیشه و در گناه هم حساب نمیشه مثلا شما میبینین که من با امرا یکسی خفستم بله. شما میخواین به خاطره که بین ما و بین از نفر اصلاح بیارین و ما رو دوباره دوست بسازین برما میگین دروغ میگین مثلا ك... استاد شما را فلانی شخص بسیار دوست داره مثلاً. دوست داره و از شما توصیف میکرد و سخنان نیک میکرد درال که نمیگرد و یکی بر جان مقابل میرین و میگین که استاد بسیار روزم را ششتر بودم شما توصیف کرد تا خوبتان به نام شما باید رو بد نبینید الان در قلب اردو طرف شما یک نوع ایجاد محبت محبت دوستی میکنین از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلام در این قسمت چی میگه ام کلثوم قالت ام کلثوم رضی الله عنها میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس و خيرا وينمي خيرا او کسی که اصلاح در بین مردم میکنه و سخنان نیکی یکی دیگر را به انتقال می او در جمله کینس ده در جمله دروغگویا حساب نمیشه و در صفحه 412 مشکات المسابی حدیثی است که اینا گفته که متفق علیه یعنی حدیث صحیحه است که ایره را روایت کرده امام بخاری و امام مسلم بنا عن که به خاطر اصلاح دو نفر گپ های مصلحت آمیز و لو دروغ میگه کجاونم نگفته این میگه دروغگو نیست چون حذفش مقدس است بنا تشکر سوال دیگه امی میخوام یکی از سوالم مذهب کردن یا تفسیف کردن اشخاص در مقابلش در مقابل خودش خوش موجود هست قسمی او را مذهب میکنه و تفسیف میکنن دی مورد از نگاه فلسفه اسلام یا شریت اسلام دی مورد چه نظریات دارن؟ بله ببینید چرا ما یا کس را در مقابلش تفسیف میکنیم؟ بله. اگر ما میخوایم شما را توصیف بکنم، باید در غیابتان تان بردگر رو توصیف تا نکنم. بله. غالباً توصیفایی که در مقابل مردم صورت می‌گیره، یک مردم مردمای چاپلوس و متملقی ای کارا میکنن پیش روی یک کسی توصیفش میکنن و شاید غالباً پاک هم نباشن. از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما و یک عیب دیگی که دارایی توصیف کردن در مقابل که یک کسره مغرور می‌سازه. و مغرور میسازیش از خاطر پیغمبر صلی الله میگه که عزت حضرت مختار ابن رو روایت میکنه که رسول الله سلام الله علیه و آله گفت که اذا رایتم المداحین فحص وقتی شما کسایی دیدن که مدح شما رو میکنن یا توصیف دیگران رو میکنن در روی از اونها با خاک بزنین چی مانا؟ یعنی گپ قبول نکنین بر از اونا اجازه مدح یک کس آمد پیش حضرت عمر ابن عبدالحزیذ و برش گفت که یا عمر تو دارایی ای صفت استی ای صفت استی ای صفت استی عزرت عمر را دلتانهو برش کف که چپ چپ چپ چپ آرام باش توصیف مرا نکن خاطر چی؟ خاطر ازی که من خود بسیار زیاد نسبت به تو مشناسم پس وقتی تو مرا توصیف میکنی تو مرا درست نمشناسی ولی من خودم خودم مشناسم و خاطر عزرت عمر را هو او را منع کرد که توضیف شیع بکنم و در حدیث شریف دیگر ببینین چطور است که حضرت ابی بکر ردرتون رو میگه اثنا رجلون علا رجلون اندن نبی صلالله علیه وسلم یک کسی پیشی یک کسی پیغم برستم یک کسی توصیف کرد برشت گفت که تو بسیار آرادم شریف هستی و خوب هستی فقالا میگه پیغم برستم چی گفت وای لکه وای بر تو قطعت عنق اخیکا تو گارتن برادرانه رو قطع کردی به یک دفعه سلاسان سه مرتبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که تو اون رو پیشروش توصیف کردی و اون رو مغرور ساختی یک کار خوب نکردی پیشروش باید توصیفش نمیکردی بلکه اگر میکردی بود و پیامرسوم چه میگه من کان منکم مادهن لا محالته وقتی که شما یک کسر توصیف میکنین و امکان نداره که توصیف نکنین دیگه چی باید بکنیم؟ فالی احسب فلاناً و الله حسبه، این کان یورا، آنهو كذلك ولا یزکی على الله أحد. یکی میگم میگم ما، عضو بگیم ما فکر میکنیم که انسان خوب است، بیبنیم تسکی کردن، ولا یزکی علی الله أحد، ایب صرگ به خطر نگذش. شما بالای خداوند مطال کسر تسکی نکنین. چه قسم تسکی میشه کسر بالای خداوند مطال جل جلله؟ جل مسلماً شما بیبنین. شما یک کسره ظاهرا دیدیش شما کسره ظاهرا دیدین بله. ولی از باطن ازو خبر نداره بله شما شاید یک ساعت دو ساعت روزانه امرازونه شش یا هفتابادم روزانه شش ولی در جریان زندگی او تنها می باشه چیکاره ای را میکنه ادل شما ایرو توصیف میکنین و که میکنی انسان بسیار شریف است و این جنتی هست در حالی که نه جنتی است و نه شریف است بدون این تسکیه کردن انسان است بر خداوند متعال جل جلاله جل از این خاطر انسان باید احترام مراعات بکنه و وقتی که میخاید که یک نفر ادیقل نس... توصیف بکنه یا تاسکی میکنه بر جاره مقابل میگه که من فلانینی نفره گمان میکنم که خوب آدم است والله ازکی علی الله احد رو تسکیه با خداوند تاسکی نمیکنم و... بالای خداوند تو چرا والله تزکو انفسکم شما آیت شریف هستنی که شما خدا تاسکی نکنین شما خدا پاک جلوه خداوند میفهمه بهتر نسبت به شما که کی خوبتر است از این خاطر اگر بسیار مجبور میشی که یک نفر را توصیف کنی بگم من گمان میکنم که این نفر آدمی خوب است خدا کنه که همین قسم آدم خوب باشه والا ازکی علی الله احد بله همین شعرها یا شاعر یا هم وقتی حضرت وقت حضر اسلام به وجود آمد حضرت محمد مصطفی الان به پیامبری مبعوث کرد در مورد شعرها هم این یک نظر را میکرد میکردن شما نمی دونید خب اینا مشکل شعرا چی بود شعرها همیشه توصیف پادشاه ها و شخصیت های سیاسی و شخصیت های پول توصیف میکردن اینی کار از اینو رو در حقیقت یک, نف... یک نوه غلامی بود این خودش یک نوه غلامی بود برای انسان وقتی که خداوند مطال آیت قرآن رو نازل کرد که الحمدلله رب العالمین حمد و صنا و صفت خاص من خدایی روز که پروردگار عالمیان است در این قسمت ما شما دیدیم که خداوند مطال وقتی که میگه حمد و سلام و خاص به ذات خداوند متعال جلال جالو بیشند. اینال وقتی حمد و سلام و صفت خاص به خداوند متعال, جل متعال شد، انسان از غلامی انسان خلاص شد دیگر. نباید شما یک انسان دیگه را به خیزان و برزوم مات حسرایی بکنین. اگر میخواین مات بکنین، مات ذات خداوند متعال جل جالو را بکنین، با خاطر که اگه اون انسان زیاد مات بکنین بر تو یک صد روپیه یک هزار یک ده هزار یک بیست هزار بده لیکن خداوند مطال بر شما چشم داده دست داده پا داده بینان هم دستان آصفت خواست با خداوند مطال جل جل که ش... دین مبین اسلام شعرها را یا شعر شعر رد کردن؟ خیر اینجا منصور رد کردن شعر نیست اینال شعر در حدیث شریف ما میخونیم که شعر مثل دیگه سخنابار است حسن و حسن و قبیح حق قبیل اینال شما اگر نصر میگین سخنتان منصور میگن و یا به شیر میگین بله بله. اینال اگر گپ خوب میگین امورو به شیر میگین خوب است همده بله بله. بی حتمر خدای مهربان آن باشد خالق کون و مکان درست از نه؟ این است این شیر خوب است کلام خوب است به نظر ماورده شده این خوب است و اگر یک نفر میخزه در شیر خود گپای فاسقانه و فاجرانه و غزل میگه و مردم به گناه و شهوت تشویق میکنه مثل گپ آتیوار اسلام، منقف اسلام در مقابل شعر مثل کلام عادی است. اگر گپ خوب میگه خوب اگر بد بد بله در تایید نظرات شما هم حضرت فهمت الله علیه و سلم با شعر علاقه داشتن همیشه شعرم میشنویدن شعر خوب؟ شعر خوبه. بله بسمت در غزوات خود از شعرهایی که در بین مسلمان ها موجود بود, بود. شع... میخواست که شعر بزرایه برای تحریک احساسات م... مسلمان ها و مسلمین در این بله مثلا حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر صلی الله علیه و آله بود یعنی در اونجا مسلمان ها با دو سلاح در مقابل دشمن های خود مبارزه میکردن یکی سلاح شمشیر بود و سلاح دیگر شمشیر زبان بود شمشیر زبان از او خاطر حسان ابن ثابت و بعضی تقریبا 3 نفر از شعرا مشهور هستن کعب ابن مالک اینها کی بودن شعرا پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن که وقتی که قریشی‌ها بالای پیغمبر صلی الله علیه و با شیر حمله می‌کردن باز شاعرای پیغمبر صلی الله علیه و جواب از اون‌ها رو می‌گفتن متاجه هستین؟ بله سوال دیگه اینجا چه از شما مطلب بکنم که در یک شخص عیب موجود هست عیب داره یک شخص همون شخص همون عیب و ذکر میکنیم یا انوان میکنیم آیا می غیبت شمرده میشه از شریعت اسلام بله ببینن غیبت سخن است که در غیاب یک نفر گفته شوه که اگر اونمو سخن پیش روش گفته شوه او آزرده شوه بله ببینید در حدیث شریف بسیار واضح بیان شده عن عبی حریرته رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون مل غیبه میگه پیغمبر سم گفت که شما میفهم که غیبت چی هست قالو الله و رسوله اعلم گفتن که خدا و پیغمبرش بهتر میفهمه قال ذکر که اخاک بی ما وقتی که شما یک برادر تانه به چیزی یاد میکرین در غیابش که او بدش او بدش ببینی یک کس سوال کرد نص شما مونه. افرای تو فی اخی ما اقول اگر برادرم اونم مو که میگم در قیامش، اما عیب داره حقیقتاً قال میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله چی گفت؟ انکان فی فیه ما تقولو فقط اختابه اگر اون چیز را که تو میگی و در او وجود داشت، او را میگ، او را غیبت کردی. متوجه اینه؟ یعنی اگر یک نفر یک عیب داره و روش شما در قیامش بر کس دیگه میان میگین او غیبت غیبت اما امو عیب واقعا داره را... داره را... این نمی غیبت بله. کفت میشه بله. متوجه بله. اما اگر او تو سوال بکنیم که اگر نباشه اما عیب بازه بله. میگه و این لم یکن فیهی ما فقط به حد دهو اما اگر بازمو عیب دهو وجود نداشت و او را شما گفتیم در خیابش باز اونجا باحتان کردین به اینجا دو چیز داریم یکی غیبت بنام. و یکی بهتان غیبت عمل بد یک انسان است دستور که عمل بد دو موجود است در وجودش است بنام. و او رو در خیابش من به کس دیگر میگن چرا میگن؟ بنام. چرا میگن؟ اگر خودت نظر اصلاحی داری در وجود من یک دیدی ضرور است که به ایک شخص سیومی بگوی بخاطر برازو گفتم میشه که چرا ای‌و ازمون متوجه شوبم ازم ضرر از او خود حفظ بکنم به خود خاطر گفتم اینجا نشد. یک استثنای در کدام حالات وجود داره ببینیم غیبت در بعض حالات جایزه است که غیبت شود دو حالت میتونم که جایزه یک یکی که یک کس به و میخه که خواستگاری برای یک نفر میکنه بله درست است با پیش شما میگه فلان نفر را میفهم میشناس شما بگن بله و در اون صورت شما مجبور هستین که عیب های از اون نفر را بر از او جانب مقابل بگوین بله به خاطر چی به خاطر اینکه اون نفر اما اولادش در چنگ از این شریر نفتن بله باز غیبت جایز است ام. که بدی از گفتارش گفته در مقابل قاضی وقتی که قاضی یک نفر و شما شهادت میتین عیب زوره میگین پیش قاضی بله. بگیده این صورت جایز است مم. و ایناله اگر یک نفر به یک عیب یک فاسق یا فاجره که به این مشهور است همیشه این کار رو میکنه مم. با شما میخواین که مردم از شرش نجات بتین برش میگین این درست است بله. اما اگر شما یک نفر عادی که یک عیب خفیف داره مم. یک اشتباه داره شما میخواین که اونموره میخواین اصلاح بکنین یا یک نفره بخواین پیش مردم بشرمانه اگر میخواین اصلاحش کنین چرا به خودش نمیگین میگین که برادر عزیز من شنیدم که خودت اینی ایبه داری ام. یا خود برادر عزیز اینی و من متوجه هستم که اینی عیبه داری برایت خوب نیست اگر خودت از این ایب خودت دور بسازی یعنی نظر اصلاحی دارین بله اما اگر میخواین برای یک نفر دیگه بوین در حق میخواین گوره بدنام بسازین از این خاطر اسدین مقدس اسلام میگه غیبت کار بسیار بد است چرا کجانا مقابل با شما و با یک کس دگه وقتی که خبر میشد دشمنی و بدی و های مردم ها کشیدن اینی کار خوب نیست مم. یعنی اگر شما میخواین که عیبهای زوی اصلاح شود پس اصلاح به این شکل نمیشه که برای یک کس دگه بگویند. ایچ فایده نمیکنه برای من یک عیب دارم شما یه عیب مرم میرین به یک کس دگه مد مدام عیب خود دوام میتون. و من پیش مردمم بد شدم شما اگر نظر نیک دارین بین بر خود مستقیما بگوین که والا استاد خودت این ی داری من نیستم یک دوست من نیستم یک مسلمان المؤمن و المؤمن مسلمان آیینی مسلمان است من نیستم یک مسلمان اومدم پیش شما میخوایم که میگه میگم بر شما بگویم شما از می عهد خدا دور بسازید من میم تشکر برادر عزیز خوب شد که مرا متوجه ساخت من نمیفهمیدم این میگه فایده نداره و ضررش زیادتر است ضررش زیادتر است خب کدام مردم زیاته به جنت داخل میشه چون ما واسه ما به شکل پیش اومده و مسئله غیبت این میاد میاد میگه پس زبان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و در ده حدیث شریف بش بشنویم حضرت ابی هرره رضي الله میگه که قال قال رسول الله صلی الله علیه و میگه رسول الله ص ص گفت که اتتون ما اکثر ما یود خل الناس جننه که شما ما میفهمی بسیار چیزهایی که سیات مردم ها داخل جنت میکنن کدام چیز از صحابه اکرام پرسان کردن پیغمبر هم گفت که دقوالله و حسن الخلق مم. یکی تقویست که انسان تقوی داشته باشه بله. و دومش اخلاق خوش این دو چیز سبب ازی میشه که اکثریت انسان با و اتدرون ما اکثر ماید ما خلال نازه انار میگه شما میفهمین که چه چی چیز اکثری زیادتر مردم داخل دوزخ میجازه میگه که الاجو و فانی الفم کسی که دو چیزش در اختیارش نباشه همیشه باز باشه یکی دهانش یا یکی شرمگاهش یعنی دهانش در اختیارش نباشه هر چیزی که دل شد گفته بره فکایی، مزاخ، رشخندی، سرازو، مزخری، گوره نام تو را بد بگو و از نگاه شرمگاه هم به تفاوت باشه پشت حلال و حرام هم ایکبار نکرده از این خاطر اینی دو عیب انسان ما به دو زخم میبره و اونو دو خوبی سبب چی میشه؟ سبب رفتار مردم اکثرشون به جنت میشه دو نکتره شما اشاره کردین و سوال ما هم سوال رو که هم مطرح کردم تقریبا به نبوده در این مورد. یکی باز بودن دهان و یکی از چرمگاه را اشارک کردن اینجا. باز بودن دهان هم به او سوالات قبلی ما ارتباط میرفت مثلا غیبت و سخنچینی و اینا و سوال دیگه که میشه که اینجا کنیم چون شما چو هم ما کردن کردین ده ارتباط که فکای گفتن یا خنداندن مردم گپای بی, بی معنی گفتن در مقابل مردم و مردم هم با آوردن، از نگاه اخلاقی از نگاه شرعی چی چی نظر چی نظر داریم خودمون ما چی نظر داریم و اسلام چی چی خواه رسول الله صلی الله علیه بلده. و سلم یکی قسمتی ما شاگردای مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و ما می‌خوایم که مطابق ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی خوبایای بسازیم ببینید دقیقاً قسمت یک نفر انسان و مسلمان لازم است با هدف زندگی بکنه بله انسان مسلمان نیکی هست. او انسانی است که خاموشیش ذکر باشه خاموشیش فکر باشه و سخن گفتنش ذکر باشه بهم. یعنی چی معنا وقتی که خاموش میشینه در فکر خداوند متعال باشه در فکر دربار محخلوقات فکر بکنه دربار جهان هستی فکر بکنه تا علم و دانشش زیاد شود فکر و عقیده زیاد شود و اگر مثلا خوا... گپ میزنه درس باشه تعلیم باشه دعوت باشه تا که در ذکر حساب شود این حال فکایی گفتن و خنداندن مردم و یا بدروغ فکایی ساختن تا که مردم بخنده بله. برای شخصیت یک مسلمان به فایده هست از این خاطر ببینین که پیغمبر روز سلمان زمین... خنداندن مردم به یک ایک از, از نرها چی شده مطرح هست؟ اصل... هنر... این یک هنرش شمورده میشه تقریبا این درست است که مثلا یکی هنر هست یعنی هنر در اسلام یک هنر هدفمندانه باشه بله. یعنی باید تنها آدم بخاطر از اینه که مردم بخندانه بلکه چیز کارهایی بکنه چیزهای مثبتی انجام بده که مردم خوشحال شوند در قلبشان یک نمه سرور بیاید بله. خب انداختن سرور در قلب مسلمان ها یک نفر چی است؟ عبادت است. ثواب داره بلیم. من میخوام بر شما یک قصه را بگویم، یک گپی را بزنم یک موضوعی بر ب... یاد کنم که شما خوشحال شوید. اما مسئلهی که یک نفر ناقی، گپای بیهوده و گپای دروغ یعنی زبان انسان مسلمان دروغ به سر یک نفر مسخرگی کوزه سر یک کسی یک قصه رو جرک و باز دیگرها خنده بکنن این نارواست. میبینید پیامبر صلی چی میگه حضرت عبدالله ابن عمرو میگه که قال قال رسول الله صلی الله و خب اینجا حضرت ابی هرره رو بچین حضرت ابی هرره در میگه که رسول الله صلی الله و چی گفت این العبد لا يقول كلمه لا يقولها الا ليضحك به الناس یعنی نفر یک سوخره نمیگه لکن هدفش چی از این سخن میگه هدفش این از تا که مردم با خندن خود با گفتن خود بخندانند یه و ها ابعد بین بين و والارض میگه ای در آتش دوزخ یکقدر فرومیر مثل که بین آسمان زمین اینقدر قچ باشه یعنی قدر در آتش دوزخ پایین میشه و انه لا یزل عن لسانه اشد مما یزل عن قدمه یک انسان میگه بسیار از زبان خود چی میشه و اشتباه قرار میگیره زیادتر از زبان اشتباهات میشه نسبت به قدم یعنی از پای کن انسان کم اشتباه میکنه لکن از زبان اشتباهاتش بسیار زیاد است از ای خاطر این خاطر اینه میخنداندن مردم در حدیث شریف چی میگه؟ میگه وایل لمن یحدسو فیک زیب لی یضحک به القوم وایله له وایله له ده صفحه 416 بشکات مش... المصابی ببینید که میگه شدت عذاب است برای یک نفره که دروغ می تاک که با به اوج دروغ خود بخندانه برای شدت عذاب است خب ما چیز رو در داریم که دروغ بسازیم بله این دروغی که ساخته میشه ببینید چه خیب کلون است یک نفره ببینید سری یک مسلمان سری یک انسان دیگه یک به دروغ جور میکنه او انسان مسخره ساخت و این مردم دیگه رو خنداند بله یعنی چی فایده از این خاطری، برای از این عذاب سخت است. در اتباط به صبات های شما، من دو اینجا متوجه شدم. خاموشی گفتن فکر می باشن و سخن گفتن ذکر ف... است. یعنی یک انسان مسلمان صفتش چیست؟ صفتش است که اگر خاموش است. فكر ميكنا, فكر ميكنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صفات مسلمان خداون جهاز ميكنا بليو. كذكر خداون دا چهر ميكنا قياما استادا بليو. وقعودا ونشاستا <سؤال> <سؤال> و علا جنوبه هم و خفته در پاولو و یا تفکرونه في خلق السماوات والعرض و در خلقت آسمان ها و زمین چی فکر میکنن؟ فکر میکنن از این خاطر خاموشی انسان مسلمان چی اگر خاموش میباشه فکر میکنه برای کس دستیسه جور نمیکن اما حکم خاموشی چی یا حکم آرام بودن؟ ایناله یک نفر میگه میگه که اگر سخن اصطلا باشه سخن نقره باشن خاموشی طلا هست و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی میگه حضرت عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه من سمت نجا کسی که خاموشی اختیار کرد نجات حاصل کرد و یکی از بزرگای چین میگه که ما در سخن که نگفتیم اوقدر پشیمان نشدیم اما زیاد که پشیمان شدیم از سخن که گفتیم یعنی از گفتن سخن زیاد انسان پشیمان میشه و از خاموشی خود زیاد پشیمان نمیشه ام. از این خاطر انسان که پیغمبر سم کسی که خاموش مان از زدن زیاد جلوگیری کرد ام. اون نفر چی میشه اه... نجات حاصل میکنه از این خاطر ببینین حضرت اقبه ابن عامل میگه که میگه من با پیغمبر بس ملاقات کردم فقل تو من نجات میگه گفتم که نجات در چیست فقال میگه پیغمبر سامنگ گفت که املک که لسانکه، که لسانک لسانکه، که یعنی نجات داریست که زبانت در اختیار خود داشته باشی مسلمان اول فکر میکنه و باز او کلمه را از دان خود خارج میکنه ولی منافق چی دا دا فرق داره بین مسلمان که منافق اول گفت میگه باز باز فکر میکنه ب هم چی میکن عملک علیک علیه کلار نکن بر مبارک بارک می که نجات داشت چی است د است که اول زبان تا باید چ در اختیار خود داشته باشیم وال بیتک و کوشش کو زیاتر در خانید باشی یعنی اگر وقت فراغ داشتی ضرور نیست که در کوچه ها بری و در سرک ها بری ودان کانتین دو کان ها کاری شوی کاریبدست تخواانید بشین به برو مطالعه بکو درسته تابوکان چیز روز که بیکار ماندی کسا کسای داد دادن که یک پندا بیکار شد فورا میاد در دادن کوچه استاد میشه و و گیورش خنی اتره پیشنهاد میکنم ولی ساعتی بیتک بیتک واب که علاقه کرد نجات دژ دستی چیز است خاموشی مم. و عملک علاوه که لسانه که پیشنهاد چیز شما میتونن که نجات حاصل بکنید مالک زبانت باشی زبانت در اختیارت باشه یکی دوم چی هست در خانیت پیشنی سومده چیست میگه واب که وقتی که یک گناه از تو سر میزنه گریه که به تنهایی به دربار خداوند مطال جلال جل رو جب خدای بد کردیم خدای اشتباه کردیم خدای تو زاد غفورستی خدای تو مهربان مهربانستی گریه و بر گناهانت میتونید این اینی سه حالت اینی سه وسیله است که انسان نجات پیدا میکنه به اساس گفتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین س کایبات کردن، دروغ گفتن، بودن کردن، اینها همه ی ای وسیله انجام میشه، انجام می این وسیله زبان هست. نقش زبان چیست؟ خب منش شوخی تو نگفتین، گفتیم گفتم سوالم کرد چون زبان بلیم. وسیله است برای تمام اینمی تفسیر تمامی بدی های داخلی انسان وقتی که یک نفر کس را بد دید می خواهی کنه عیب شه بگویه غیبت شه بکنه یک کس را می خواهی بده وسیله کلش کلیش چیست زبان است از این خاطر اینجا بیبرین حضرت ابی سعید میگه که اذا اصباحبون آدم قینل اعضا کلها تو کافر اللسان فتقول اتق میگه وقتی که انسان صبح میکنه تمام حزای بدن انسان می پیش زبان بس میکی زمان بترس از خدا در قسمت ما فانا نحن بك طب دیگه ما میگه ما کل ما گاسم به تو تعلق داره فاین استقامت استقمنا و این اعوججت اعوججنا اگر تو زبان راست بودی ما هم راست هستیم اگر تو کجودی ما هم کل ما کج میشیم بله. اینان زبان یک وسیلی اساسی است که در حقیقت تفسیر تمامی اعمال انسانه میکنه اگر انسان زبان خود در اختیار خود داشت باید با زبان خود به ذکر خداوند متعال جنل جالوه مشغول شد با زبان خود بین دو نفر اصلاح آورد، با زبان خود کوش کرد که از غیبت و دروغ و دشنام دادن تمام اعضای بدن دیگه انسان آرام میباشد بله. اما اگر زبان الفاظ بده استعمال میکنن توان تمام اعضای بدن امرای عزیزی به جنجال می باشه کسایی که سخن های بی معنی میزنند و کارهای بی معنا مسخف هست و خود به کارهای بی معنی, مصوف کارهای بی معنی مصوف می سازم. شما چی توصیه دارین در این مورد ما توصیه شخصی ندارم توصیه‌ای که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده برای. بهتری توصیه هست برای. و ما کل ما مطابقه ولكم فی رسول الله اسوته حسنه باید ما شما الگوی خود و نمونه مثال خود کی بگیریم اسو حسنه ما حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است حضرت علی ابن حسین رضی الله تعالی او که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من حسن اسلام المرء تركه ما یعنی بهترین اسلام مرد چی هست که از گپ های بی معنا خدا دور بسازد باید. یعنی بهترین اسلام برای یک مسلمان کدام اسلام است اونمو اسلام اونمو مسلمان خوب است که از گپای بیهوده و گپای بیمانه از دو دوری بکنه ببینید چی از گپای بیمانه شما در خانهتون چند نفر هستین کتبرادرت جنجال داری نداری چی مشکل دارین چی وقت شما قلقال کردین چرا ده بیت الخفه شدید برای من چی ارتباط داره که من بخیزم یک تمام روز فامیل شما گپ بزنم بسیاری مردم ها عادت دارن ده دا گپ‌های بی‌معنا وقت خودمون مصرف میکنه فلان نفر جنگ کرد فلان نفر قسم لباس پوشید فلان نفر ده فامیل خودتو گفت فلان نفر رفت مثلا در خانه فلان فلانی, فلانی, فلانی که تو خود خفاس فلانی که خشی خود خفاس فلانیت هست این گپ‌های بی‌معنا هست ولی یک مسلمان لازم است که از اینمی گپ‌های بی‌معنا و بیهوده چیکونن یعنی بهترین اسلام چی هست؟ اسلامی هست که بگپ که دخ... غراز نداری، ها؟ بله. هم ایچ چیه خدا مسروب اگر خیرت برشان میرسه کسی آمد از پیشت سوال کرد درست بلیم. اگر نه از گپای بیمانایی که هیچ فایده نداره از دوری بکنه وای که مثلا انسان وقتی که در یک مجلس میشینه اگر یک گپ مثبت زده میتونه خوب نمیتونه از گپ های و بیمانه که نه فایدی در دنیا داره نه در آخرت داره جلو گیری از وایدی جلوگیری بکنه حکم درغگو از نوی فلسفه اسلامی چیست نوی شاید اسلامی خب درغگو در حقیقت مشکلیشی هست که در حدیث شریف پیغمبر صلی الله میگه که اگر یک نفر دروغ میگه تباعد عنه الملاکو میلان من نت نمراجع بیه. اگر کسی بالا بود، حضرت رسول صلی میگه در صفحه چهارصد و مشکات المسابی حضرت عبداللایب نومار را دلتون وایت میکنه که پیغمبر سعی میکنه که اگر یک بنده دروغ میگه تباعد عنه الملاک هست پیش از دور میشه ملاکی رحمت. بلید. یک میل حاصلی بسیار دور است منت نماجه ابهی از مرداری و پلیتی و مکروب و چطلیه اونمو سخن بده که ای گفته شما ببینید وقتی که ملکه رحمت از انسان دور شد رحمت خداوند از پیش انسان دور میشن یعنی این نتیجه دروغیست که یک نفر که عادت میکنه دروغ بگویا و دروغ میگه یعنی گپی بسیار بد از مردار رو میزنه که ملکه از این مرداری دا دا سخنزی به یک میل فرار میکنه. پس معلوم میشه که یعنی دروگوی نتیجی بسیار بدی برای یک انسان داره که یک گندگی است در وجود انسان که انسان باید یک گندگی از دهان خود باید پاکنه. ما و شما گندگی های ظاهری دهان خود با چی پاک میکنیم؟ با مسواک با برس، کریم میزنیم، پنج وقت برس و کریم استعمال میکنیم. بلیم. گندگی های معنوی از باید از هم پاک بکنیم. با از. دروغ دروغ کسی که تنم هم یا تنگو هست حکم شریعت اسلامی دیما رو چی بله تنگو در حدیث شریف از حضرت رسول الله صلی الله علیه و salam به تو روایت است که انسان مسلمان تنگو ببینید حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی روایت میکنه که رسول الله صلی الله که لیس المؤمنو بالطعان مسلمان تانه‌گوئی باشه ولا باللعن و حمل لعنت گوی باشه ولا الفاحش و البذی و همشان با کارهای فاحش و بد مطلع باشه و همشان سخنان فاحش و سخنان بد نمیگه ببینید یک هر انسان کنس بیشاره یک عیب داره یعنی انسان در زندگی خود یک سرسل عیب ها می داشته باشه کی عیب ها در فامیلی یک انسان شاید به خودش عیب داشته باشه یا فامیلش داشته باشه شاید خودش هیچ در مو نخواه کمو عیب در فامیلش باشه و در خودش باشه حال بله. با این عیبی که در وجود از او هست و در یک نفر تعنه دادن و که انسان مسلمان در شخصیت شخصیتش مورد سوال آوردن او مثلا به نظر یعنی تحقیر کردن دیگه وظیفه دیگه نیست که کدام نتیجی نداره کدام حرفدفی دیگه نداره لحظی خاطر انسان مسلمان تگوی نمیباه لعنت گویی نمی باشه, باشه. بسیار احافت زبان خود حفظ میکنه. و نمی که جان مقابل خود در اشتباهاتی از, از او او را من. اگر می خید که او را نصیحت بکنه او باز فرق میکنه با طنه که برای ش فمانه که برادر این اشتباه کس تو شده یا این اشتباه است اگر شما حل بکنید، اگر یکی یک اشتباه شده باشه ده سال پ فامیل یک نفر یک مشکل تیر شده او را بخیزد از روش بکشه و او را تع به این برای یک مسلمان جاییز نیست و اجازه هم هست یک نکتر استاد که شده باشن شما در جامعه ما که زیادتر با همیشه ماجه هستیم و همیشه روبارو هستیم کسانی هستن که بالای اشخاص لعنت میکنن یا لعنت میگوین ارشادات حضرت پرانبست صلی الله علیه و سلم در این چی هست. چیست؟ ببینیم بعضی زن بعضی مرد ها بعضی اشخاص عادتن بلا یک نفر میگه لعنت خدا در سره در غذب خدا شوید نعوذ بالله من غدا بالله ما به خداوند پنامی جیم از غذب خداوند مطال جل جاله هم پیغم برسال سلم چی میگه؟ میگه که عزد سمور بن جنده بردیلتالان ها روایت میکنه که رسول الله سلم گفت که لا تلاعنو بلعنت الله کسی به لعنت خدا لعنت نکنیم اصلا ایج لعنت نکنه. باز اینکه بگویند بلانات خدا گرفتار شده بی بی قطعا نگویند نهی میکنه پیغمبر سلام الله علیه و آله من نمیكنه ولا بغضب الله و همشون نگویند که غضب خدا دستره عوض به الله حساب کنه ولا بجحنم و همشون مردم نگویند که خدا ده دوزخ بردیدتون دوزخی شوی بله اینه پای بعد پیغمبر سلام من نمیكنه نه به جهنم در واقع ولا به نار و به دوزخ یعنی کوشش بکنین که بر مردم خیرسان باشین. ببینید در دین مقدس اسلام چی هست وقتی که یک نفر سلام میده برش دعای سلامتی میکنی برش میگه از سلام علیکم وقتی که از سلام علیکم گفتی برزو دعای سلامتی کردی ایناله برای مسلمانی که تو دعای سلامتی میکنی